الحمد لله رب العالمين و الله عبدالسید و رسول آل الله و آدر طیبین و خاطرین المعصومین و نهت دائمه صاحب عذای مجمعین اللهم از فرمان جمعی المشترین و رحمنا و رحمتی که و رحمه رحمه رحمی از نبود بعض از توائد هست بیشتر نظر ما رو اون توائد آشمایی با اون توائد بحث یه مقدمه ای رو یک مطلبی رو از که مرحوم استاد که بایی هست با مثلا کلمات مرحوم نجاشی برپرحصیم کنن مثلا در ما نحنفی چون یحیل ازوار مثلا مردد بین دو نفره و نفتر و نفتر متعرض یحید شده پس به این قرآن می که یحید عرضت مشکور همین یحید نبدالرحمانه هست کنیم به طور طبیعی چند جا چه این جا چه این جا و این شخص یعنی سر کوئلان مالکران نجاشی یا هی، در این جریان الان طور طبیعی فتوای بر برایشون زیاد داره. اکثر خدمات من کار موری نیست، بلکه اینه که عبارات نجاشی به درده مباحث رو عادی نمی‌کنه. حالا با اون اصطلاحی که ما آخر بحث روز عرصد کردیم، و این اصطلاحی نی اصطلاح به کار برده نشده، اي خود من توضیح بدم، با اصطلاح خود ما. گمونیکه توضیحی که روز عرصد کردید روشن شد. اونی که ما در روایات داریم افتناده. اون اونی که مرگوم نجاشی برده اجازت این تو با هم دیگه خواهم ما یک احسانید داریم یک اجازات داریم اجازات به درد احسانید نمیخورن بله پیش اهل سنت اهل سنت کتب رجالشون به درد احسانید میخوره چون کتب رجال از احسانید گرفته شده چرا مرگوم اصلاد از هم جدشه باقا. یعنی در در این حساب واقعیشه. شد در کتب اهل سنت کتب رجال از اسانید گرفته شده. اما ما غیر از کتب رجال فهرست داریم. بله رجال برقی ما از اسانید گرفته شده. درست. رجال برقی از اسانید گرفته شده. رجال خود شیخ توسی از اسانید یا خود شیخ گرفته شده، چه قبل از اسانی اون از اسانید گرفته شده. اما فهرست شیخ توسی از اصانید نیست فهرست نجاشی هم از اصانید نیست فهرست شیخ توسی و مرحوم نجاشی از اجازات و تحارث هست از اجازات و تحارث این دو تا رو چون چا در ذهن آرخوی بوده که مثلا رجال نجاشی, رجال نجاشی رجال نه نه فهرست شیخ نه فهرست نجاشی و نه فهرست ابو غالب اصولا فهارست از کتب رجال گرفته نشده از روایات نظرد از اسانی گرفته نشده از رجال هم گرفته نشده نه ابحامات رجال با اسا... با کتب اجازات حل بکنیم نه ابحامات که در موجود در روایات بله و به هر مناسبت هم تعرض کردیم که راه این رئیس نگاری در حقیقت این بوده این نبوده که به یک سند نگاه کنن ازش اجازه درست بکنه شاید بعد از قدما داشتن البته یکی دو مورد استثناء هست نمیخوام خیلی وارد یکی که گفتم دیدی که مثلا ابن ندیم کتابی رو نقد میکنه و ما در اجازه اصحاب نداشتیم یه روایت داشته باشیم این نصیزش واقع شد حالا من نمیخوام توضیح بدم چون مخزوم گرفته میشه چججج اینه یه مورد دیگه الان میگم اینم احتمالاً در بعضی از کلمات متأسفانه واقع شده. مثلا گاهی اوقات اینطوری میشه ابن عبده مثلا طرح ما مثلا یه حدیثی فلان قال حدیثی فلان من کتابی، اند و علی من کتابی. مثلا حدیثی زید بن مثلا من کتابی. این منشأ شده که بعضی‌ها همین سندی که روایت ما الان روایتشه این رو به کتاب این چسب قرار دادن. تو نگوین کتابیه کتابی بوشنجو. پس معلوم میشه کتابی داشته و این روایت از اون کتابه الان اونی که مقابل ماست اسناده. دیگه چون لحظه کتابی تو اسناد. روشن شد مطلب میخوام بگم؟ چون لحظه کتابی تو اسناد به کار برده شده الان این اسناد رو ما تبدیل بکنیم به اجازه مثلا اسم اون آقا که گفت من کتابی در فهارس ما نیامده اسمش از نهیم در کتاب که کتاب داره در فهارس ندیه امراه در مسادر ما نیامده که کتاب داره اما تو روایت آمده املا علیه من کتابی تو روایت آمده من کتابی هم بگیم این آقا کتاب داشته هم این اسناد رو اجازه به کتاب قرار بدیم بگوشن چون بگیم از طریق و اله کتاب همی سند این سند رو تبدیل به اجازهش بکنی آیا اینها درست یا نه یا تقصیل داره فیلن نیم چون این مباحث مفرح نکده تا حالا من برای تبدیل فکر مفرح میکنم که آن روش فکر بکنم رو پس روشن شد جواب معلوم استاد در یک کلمه است در روایات اسناد، در کتاب نجاشی اجازه است اجازات نیمیتونه کاشق معزلات اصانی باشه برای اگر نجاشی گفت مثلا این کتابیس مشهور منبار مثال و ایشون اجازه را نر کرده و اجازه هم واضحه مثلا فرض کنیم مثلا کتاب کتاب حلوی اجازش واضحه ابن عبی عمر انه حمماد انه حلوی بعد نجاشی بگه حمماد ابن عثمان و ما سرده ها سند درها سند ببینیم ابن عبی عمر انه حمماد انه حلوی اینجا بعد نیست اینجا میشه از کلمات نجاشی رفی ابهام سند یا صحت سند یا زیادی سند رو بکنیم یعنی اگر ثابت بشه که این کتاب مشهور بوده مثلا اجازه ای که مرمومه نجاشی به کتاب داره واضحه همون اجازه به صورت سند مکرر بوده فقط نه یک بار صده بار پیشه ما ده ها بار پنجه بار بار مکرر عین اون سرل اجازه ای آمده تو سنل های ما دلت کرد الان نمیتونم هست ابن ابی اوه انا حماد الحلبی خب به همین اجازه همین اجازت فعلا به کتاب الحلبی به اینه در سنل ها سنل ما تکرار شده پس اگر یک جایی بود مثلا امثال میخوام بگم ابن نبی اومر اندال حلوی بگیم آیده سختی داره چون این معلوم از همون کتاب حلوی سوش حماد واسه میتونیم ابه ها میگه در اتانین هست توی یک ترن اومده حماد ابن عیسا اندال حلوی بگیم این غلطه این حماد ابن عثمانه چون در اجازه نجاشی حماد ابن عثمانه بقید فرمودی؟ چی شد؟ پس اگر یک جایی واضح بود که اجازه به این کتاب کتاب هم مشهور بوده و در این اون اجازه پیش ما مکرر شده این اون اجازه تو اصانی تقریبا دیگه اطمینان پیدا رو که از اون کتابه اون وقت اگر بعضی جه ها سندی داشت قلق داشت زیادی داشت نقیص داشت سخت داشت برای اون اساسا بیدونی آیگور جدی در کاری که کردن این کار رسما در رجال نبود ندار شیعه ندار رو مثلا علی ابراهیم در کتاب کافی در ذیل عنوان علی ابن هر چه علی ابن ابراهیم بوده واقع کامل مثلا علی ابن ابراهیم عن این یک علی ابن ابراهیم عن ابن ابی یک جا بعضی در حاشیه نوشن صرف داره به قرینه حدیث طریقه سابق سر ایشون مثلا صرف ها ابهام ها که در اسان واقع شده برابر پس کردم کلارا کاری که ایشون فرملن البته از شاگردای ایشو انجام دادن نگیدیم بخواد اسم برن. این متعارف رجال نبوده گاهی ممکن بوده مثلا از موارد که اسناد مشکل بوده مثلا سه تا چهار تا قبل و بعد رو نام ببره اما به طور متعارف در رجال اهل سنت که آمده قل و بعد راوی و مرویعن آیه خوی همین هم کاری که این کاری که آیه خوی کردن جامع روات کرده اینا راوی و مرویعن این متعارف اهل سنته این متعارف این متعارفی بودینه اما سند رو کامل آوردن که یکی از اهداف ایشان این بود که با ذکر سند کامل جایی که سخت داره جایی که اضافه داره جایی که اشتباه داره جایی که تحریف داره تصریف داره اینا رو می‌چینید مثلا ابن ابي عمر عن هميد مثلا اجازه الهميد از علی نه این همه اختلاف حماد دوست من با مثال محمد بگیم چون می‌دونیم حماد واسط هست این ایشون از این راه اومدن ثقط ها و زیادی ها و نقیس ها رو به نظر من این راه یک نکات دیگری داره که این وقت دیگه این شو نمیخوام وارد این بحث پس یک بحث تا اینجا روشن شد ابهام اسانید رو با اجازات نجاشی نمی‌تونه حل کنیم یه بحث کبری مگر با این استثنایی که هست بحث دیگری که در اینجا پیش آمده چون مرحوم شیخ در سلسله نجاشی یحیی بن عبدالرحمن حضرند نشه و مرحوم شیخ صدوق در مشیخه سلسله و ماکان سیهانی یحیی الازرع عنوان یحیی الازرع آورده بعد سندش آورده آخرش گفته علی یحیی بن حسان الازرع عن السنهد آخر سند بن يحيى الازرقي حسان الازرقي از آقایان مثل مرحوم فتون قاموسيبا مثال گفتن معلوم میشه که نجاشی يحيى الازرقي و يحيى بن الرحمن صدوق يحيى الازرقي و يحيى بن حسان گرفت بحث سر این بحث کوراییست چون من فقط بحث یحیار نمیخوام بگم یه لطیفی است سوالی که اینجا مفرحه اینه خوب خص بکنم چه سوالی که مفرحه نشده مثل مرحومه های توستری جای دیگه هم داره که صدوق اینجور فهم ده نداشه اینجور سوالی که الان طب تفسیری که من را برای شما عرض کردم آیا اون چه که در مشیخه صدوق آمده در حکم اجازات این رو با اجازه نجاشی معارض بدونیم. ببینیم صدوق در مشیخه یحیی بن حسان ارذل و شیخ توصی و نجاشی یحیی بن عبدالرحمن الازهری ولد خوب دقت شود. در یک اجازه یحیی بن حسانه در یک اجازه یحیی بن عبدالرحمن روشن شد. اونم نکته تیف حال روشن شد. آیا مشیخه صدوق رو ارزش اجازه بهش بدیم؟ مرحله در ارذ کتاب نجاشی یا مشیقه صدوق رو عرضش احطناب بشدیم اون که در مشیقه صدوق آمده سنده مثلا ما سه محور کردیم محور روایات، محور کتب رجال، کتب فهارس آیا مشیقه صدوق در محور کتب فهارسه میگه میشونیم بس مطرح نشده بی این صورت در مطرح نشده ما بیه این کتاب مشیخه صدوق رو مقایسه بکنیم با اجا... فهرست نجاشی مثال دیگرش مشیخه شیخ توصی در تحضیب استفساد مشیخه شیخ توصی در تحضیب استفسادی مواردی که بگردیم باید خارجم حکمش حکم اجازاته مشیخه مرموم شیخ توسی حکمش حکم اجازاته یعنی حکمش, حکم اجازات حکمش حکم فهرست نجاشی. هی. آیا مشیحه صدوق هم همینطوره؟ چون آیت با سلم کردی مقایسته نجاشی اینجور رو هم ده صدقون ما به مشیحه صدوق به صدقه اونت نمره چی بکنیم او را در کجا از دست دست بندیش بکنیم تو کتب روایات یا رجال یا فحارس یا به اصطلاح دیگر امروز من ارزش اون رو به عنوان اسناد تلقی بکنیم یا ارزش اون رو به عنوان اجازه آیسوسته ننمیشه این مطلب رو وقتی که میاد مشخه صدوق رو با فهرست نجاشی مقایسه میکنه، یعنی به مشخه ارزش فهرستی داده یعنی اجازه حساب شده میگه در این اجازه این طور در این اجازه این طور آمده آیا این طوره که این صدوق به اصطلاح به عنوان اجازه اینه گفته یا بگید نه مشخه ارزش اجازه نداره مش... مشخه صدو ارزش کتب روایات داره یک اصطلاح یا مشخه صد... صدو اصناد اجازه نیست همطور که ازگردی ابحام اصناد رو با اجازه بر نمیداره اصلا رسوش با اون نیست این خوبش ایک روایت خود دفت بکنیم آیا مشیخه صدوق فوق شیخ روایته؟ در یک روایت آمده یحیف نحسان الازم فوقش اینه. یا مشیخه صدوق مثل مشیخه شیخ توسی در تحضیب و استفسار حکمش حکم اجازاته که انما کلام صدوق معارض میشه با کلام نجاشی اون روشن شد ظاهر عبادت مرمو خاموز همینه postcssری جا دیگه هم برای اینجا داره. این این البته این بحث کبروی شهری که اون خب مرد بزرگوار ایشون که تطوع داره، انصافاً من چند بار عرض کردم بعد از اون هاجی نوری در تطوع بنذرش شد بر هم آیا شانطری تستری باشه. این آغونی که در رجال نوشتن، خیلی زحمت کشید، سعی وا زیادی کرده اما قدرت تحریر قوی نداره متأسفانه ایشون چون خیلی اصول زیاد نخونده بود، اون قدرت قوی تحلیل و حل رو خیلی قوی نیست اما تفکرای خیلی خوب و آشنایی زیادی هم با افتکازات خودما نداره این نکته دیگه منفی از در کلامشون ایشون هرچند نقاط مثبت خوبی هم زیاد داره که اینکه ایشون کتاب حساب کشی تا مقدار زیادی تصحیح کرده همهشون هم موارد زیادی کار خیلی خوبی ایشون شروع کرده یکی از کارهای ایشون هم همینه نشریه هم داره مثلا یه یحیی الازر تبر گفته شیخ صدوق یحیی نه حسانه تبر گفته نجاشی یحیی بن عبدال بحمانه تبر کردیم؟ این داره اینجای داره ما این بحث کبرشون گفتیم و خیلیم تحریم بکنیم اینه داخته بحث کبرگی این بحث کبرگیش اینه بحث کبرگیشونشون ندارم ما بحث کبرگیشون مثلا اینجای دیگه هم به درستون میخوره. از کارم. من نروز مقای خارج میشم به خاط سوابق کتبی فروردین که با تو و اصول شبهه جایی که قرارو برد بحث خاصی هم در رجال ندیدیم مجبور می‌شیم بعضی مکاسب یک قد نمونه سری نارو متعرض بشیم از نظر ارزشیابی مشیخه صدوق رو در چه حدی بگیریم در حد یک اسناد بگیریم یا در حد یک اجازه بگیریم؟ و در اون تقسیم بندی جزء کتوب روایات جز روایات حسابش می‌کنی رو یا جزء رجال یا جزوه فهاره است اینه که جزوه اسامی یا جزوه کتبه روایاته این اشتباهی بیش آمده خیال کردن مشیخه مرموم شهر صدوق شبیه مشیخه توسیه نه مشیخه شیخه توسیه اجازه یعنی به موارد مواز خاصشون که بردشان سواب هم توضیح داریم یعنی به استثنان اون که خودشون تفصیح کردن اگر افتدا به اسم کسی کردن از کتاب اوست و اون که در مشکخه آمده اجازه است که ایشان به کتاب رو دارن اون دقل بکنه ولی زا گاهی اوقات منگوه شد یک کسی رو در مثلا پرسونی با مثال در فهرست نامشون هم اما در مشکخه اسم اون تو فهرست هست ما از این تبدیلش اشکال نداریم گاهی روشیشون افضا به اسم کسی کردن حتی مشهور نظر محمد الن احمد اینطور باشه توی مشیخه ایشون تعریف مدار اما تو فهرست داره یا به تو فهرست نداره توی مشیخه بدی می‌ذاره نداره و تو محمد الن احمد ببینید عقیادت نگاه بکنی توی یکیش داره به نظر ما چون ارزش هر دو ارزش اجازه ای فهرستیه هم مشیخه شه و هم فهرست بشه جا جابجا کرد مشکل نداره نظر ما جابجاییش مشکل نداره تعویض احد ما به دیگری مشکلی هر دو اجازه هم. اما مشکه خیلی شیخ صدو قبل با حسده ارزش اصناد داره ارزش روایت داره اون چرایه که ایشان اووردن در آخر این کاملا واضحه هست کردن چند واضحه ظاهرا مرموم شیخ صدو بعد از این کتابه نوشته این کتاب محاروخشونه از اول مثلا اولین حدیث فکرم اول حدیث از علیه ابن هست از شما به ترتیب کتاب من با فهرستم این جه به هم نمیخوره به الا عوض نوه درستادش میخوره اصلا فهرست کتاب به فقیه اول اسمی که میاد اینه نمیشون ماکار نفیان از این کتاب اسم دوم، اسم سوم. همجور به تحبیل راتن جلو. لذا خود مشیقه که صدوق مرتب نیست بعدها تا اونجایی که من میدونم ولی علم و اول اولین کسی که او رو مرتب کرده مرموم صاح حال چیز هم صاحب تو زهنم نیست مجلسی دو مرت عریز اول کرده یا زار نکرده. هم نکردهش کردم الان تو زهنم نیست. یه هم نیست تویه ع مترن اما سالبت سال مرترت تر رو جارایی به حروف این حقوق هجارایی که ایشون اوورده با اون روح کاری که خود صلوک کرده فرق داره. شما خیلی راحت میشین تو موه خودتون چهتاب فرقیه ج روتون بز هر استیک ایشون به ترتیب رفته رو نه اول شک دو ساث جاابجا شده. بعد می جلو و خیلی لطیفه که آدم مثلا میرسه مثلا به صفحه شهر سفتا فلان اسم اینه در مشیقه آمده بعد مثل آدم یک برق بزنه دوست تا اسم افتاده مثل که صدور یک برق داده یادش رفته دوست تا اس در مشیقه افتاده از سمه و خورده اسم اس آنها در مشیقه وجود ندارن که ایشون به نام اونا اتدا کرده در مشیقه وجود ندارن ادهش خیلی واضح هر به یا چه چی میکنم من این دیگه برق, برق بس گایی سه نفر تو هم نفر منشون مقابله کردم نمیخواب وارد این بحث بشن و حال مشیخه شیخ صدوق این تصور شده طرق ایشان به کتب نیست طرق ایشان به روایاته ولذا طبق این تقسیم بندی ای که بنده ارز کردم که آن دیگه ندارن مشیخه صدوق در اداد اصانی ده. نه در اداد اجازات و در اداده روایات حساب میشه نه کتب فهاره است اصلا ادادش اداد روایات خیلی از افرادی کهشون اسم بوده ساد کتاب نیستن و غالبا هم توی طریقی که ایشون مشکه رایر که اوگرده یکی از افراد مشهور هستند. اصلا حسین سهیر هست ابن نبی عمر هست سعد ابن عبدالله هست که به ذهن میاد ایشان از اون کتاب گرفت بود اون شخصی در وسط نسا اون کسی که ابتدا به اسمو کنید به هر حال اون چی که ما الان میدونیم عبارت صدوق قدس الله نفسه در مشکهه اون در حد عبارت نجاشی و شیخ در فهرس نیست به خلاصه برس یعنی کلام صدوق رو به دست دستبندی بکنیم جاش توی روایات که ما در یک روایت داشتیم یه احیم نحسان از رم این نمیتونه با کلام نجاشی معارضه بکنه چون نجاشی از اجازات گرفته از روایات نگرفته این خیلی نقطه پندی بوده روز چون جایی هایی در تکیم مفرصدی شده باشه دیدیم بیم مناسبت از دو تا نقطه اساسی رو ما سر کردیم اروز خدمتون رو عرض بکنیم یکی این که این که اهوی خویی بعضی از اسامه رو حل میکنن با مش با فرسان نجاشی این درست نیست این که ما بیان کلام صدورو در مشیخه در عرض کلام نجاشی درازه اینم درست نیست کلام جیدون مشی که محمود سرو در ابتدای تقریح که من این جوابات از کتب معتبره احسن مشهور درسته ولذا اگرم قبول نسخه سندی که از اون کتب مشهور است مثلا کتاب حسین سعید واضح روایت که این آقا از کتاب و زنسایی جوزده درست کتاب خود شخص کتاب‌های مشهور تو وسط سند واقع شدن از با تو گنکه رو مثلا فرسان ابن عبی عمر رو چون گاهی بگه این واضر ابن عبی عمر اصلا مردم که از اون نواده بیشه شده بعد فریقش بیشون موزه برای این اجازه است این درسته توی یه مشقه صدوبون تاری که من زنبیشه سردستی حساب کردم خیلی دقیقی نگرف نمزمه اینکه توابعی که تازه شابشی شمار گذاریش چهار تا دویست اونی که منم یه حساب سر دستی کردم از مشهور خیلی خدوب چهار تا مورده. ممکنه فرض کنیم مثلا پنجاه موردش اجازه باشه. راست این هم هست. مثلا خودش میگه ولی پیام وعده نبیم. خیلی وعده کتاب نبی پیش شده خیلی وعده دیگه. بعد گفت به مکانهایی اند نبیمو بیاییم تغییر هست کتابیشانی. اینجا اجازه. هست. اونجا یک از موارد مشیخه واضیه که از کتاب شخص اینو قبول دارن اونا اجازه است اما معظم مشیخه اسناده رویات اجازه نیست بله از کتب مشهور است کتب مشهور مثلا همینجا در یحیی الازر آمده در مسئولش ابن ابی عمر عبان ان ابان ان یحیی بن حسان الازر واضیه از ابی عمر است یکی دیوازه به نظر ما این حدش این میشه که در کتاب ابن ابی عمر ایشان یک روایت دیده اینطور بوده ابن ابی عمر انا ابان بن عثمان علی یحیی بن این اجازه به کتاب یحیی بن حسان نیست. ما لازمو بحث بکنیم چرا اجازه کتاب به یحیی نسبت نداده؟ چرا شیخ کتاب به یحیی بن چون الا تقدير وجود شخص ادامی اگر نه هر سالن عذر الا تقدیر صعود معلوم نیست که ایشان صاحب کتاب باشه به مجرد عبارت مشیخه او را اجازه حساب نکنید دقت بکنید ارزش کلام مشیخه صدوق ارزش اجازه نیست ارزش اسناد است اسنادی که یا یحیی بن خب حالا بحث دیگری بزنیم بحث کبرایی ما تموم بشه داریم اول کار ما تموم بشیم پس ما در اینجا یک نقطه پنی خدمتونه عرض کردیم دو تا نقطه پنی که تطریبش هم کردیم او یحیال. یحیال از این این میمونه اینجا کبرایات کوبرا... در میمونه مردار تشکیزه موضوع پس کنم که دقت بکنید چون این راه رو که من رفتن در این کتابی که حالا من دیدن نیامده من کلماتم عرض بکنم مرحوم آی خویی ایده از علمای ما در اینجا غالبا این کاره میکنن مثلا یک یحیی نه حسان الاغرب می نیستن یک یحیی نه عبدالرحمن بعدا میسن یحیی الازر درواد مشترک ولی دو تا عنوان بیشتر نمی دن در کتب الرجالی ما که نوشته شده بعضی از کتب الرجالی ما هم راسم یعقوب بن حسن مثلا خیلی توصیفی نداره سوال درید رو باید اسم شما ده ارزش نداره عده از کتب اصحاب ما نظرشون اینه که این افرادی که کم عنوان دارن اصلا ننویسن مثلا مدیر مقامینا بدیعسون یعقوب اونم یک طور ما وای کو یک راه دیگه دارن اون چیزی که در کتب روایات ما و کتب رجال ما و کتب فهارس ما آمده، به عنوانه برای هر کدوم عنوان قرار این کار ایشان خیلی فنیه این کار ایشان بسیار کار فنی خوبی. اضاف که است یک شخصی مجموعاً به 20 تا عنوان در این مسائل رزرو شده باشه کار خوبی لکن ایشون فقط اون نقصیر رو که من اعه ای اگه این کار میکردن بهتر بود د از اینکه انابین رو بیارن این دسته بندی هم که من عرضفم می اضافه میشه سی خوب بود. این دست بندی خیلی تاثیر میکنه. اون دست اینه که بگیم مثلا این عنوان، در روایات آمده در فهارس آمده در رجال آمده این عنوان فقط در رجال آمده این عنوان فقط در فهارس آمده یعنی اضافه بر این که ما همه انابین رو بیاریم خوب در بکنیم حالا اتحاد عدم اتحاد اون بحثه بعدی شه اضافه بر او ارزیابی هم بدیم آنکه ایشون نوشته بخره اما اگر این رو ارزیابی بدیم ارزیابی نهایی بگیم در کتب روایات، سه عنوان آمده. در کتاب دو عنوان آمده در کتاب فهارس یک عنوان آمده خب کردیم این. این خیلی برای کشف مثلا جایی که افهام داره افهام میشن شدیده برای او خیلی محصره این کاری که تا حالا کلن نشده و این ما رسولا در شناخت اینجور موارد ما اینه که به راه در این قضایی هایی هم. مرحوم های خوبی طبیعتا در عنوان این که ما داریم البته آه خود مثلا در حقیقت از یحیل از لفت عنوان یحنوی یحیا هم به تنهایی اینکه از روایات رو برده شما خود عنوان یحیل یا عنوان مستقل دارن حالا در روایت قاربایی در اسانی ده در کتب رجال کم دارم در کتب اجازت فهارس هم کم دارم خیلی کم دارم که اسم تنها باشه لیکن مثلا ممتن است که ما با غرینه راوی و در همین عنوان یهی ها هم بفهمیم یهی الازره این مقداری که ایشون باید کردن فعلا نفهمیم که چه یهی باشه آلا من دیگه واضح بست سورایت نمیشم چون اون بست سورایت اما اناوینی که آی... بلیده آیه خوبی گاهی هفت و هشت رو اصلا عنوان دادن و خوبم هست کاریشون خوبه اما جنبندی نشده اون مشکل کار نه تحلیل شده نه شده. مثلا یکی عنوان زدن در این جلد 20 از این که من صفحه 16 یه عنوان زدن یه یل از رق قسم بعد نرشتن شیخ اینو در اصحاب ساده اصحاب کازم علیه السلام ارده. یعنی در محور کتب ریچان بعدا فرمودن برگی هم, هم این کرده از حاب سادر و کازم خب این بازیه که شیخ از برقی گرفته پس الان ما در کتاب رجال عنوان یحیل از هم داریم بعد فرمونن به عنوان یحیل از هم در سی یک حدیث واقع شده یعنی کتاب روایات این دسته بندی نکردن این بندی که بشه خیلی نتیجه گیری راحت تر میشه پس در سی مورد از کنین کنان سی یک موردیشون دقیق نیست. ایشون مشارکتات بین تحقیق و استفسار تشریف تصریح کردن. اما ممکنه حدی تو تقیه او تو کافیه آمده. این دو تا شمارش فاصله داره. این شمارشی شمارش ایشون دو تا. نه تو اینکه در فری و در کافی و تحت اصل هم باشه. سه تا شده. ایشان متأسفانه درست عدد ایشان درست. خب برداشت خود ایشون به حسب کتاب حساب کرده. این برداشت برداشت خوبی ایست. در اینجا ایشان راوی و مردی رو به دقت اوبردن حالا بعض جام خرابی توضیح دادن فقط در یک جا هست روایت در کتاب اه... کافی هست در کتاب مردم رو خواهد و اه... استفسار هست سفان ابن یحیان ان یحیان ازرق ان عبدالرحمن صحوان عن ازرق الأزرق بن عبد الرحمن ایشون برداشتن ایشون بس در این نص صحوان عن يحيى بن نه این ظاهرا اون که ایشون فرنده خیلی حالا ممکنه مشکل نداره اما ظاهرا حدیث با این طوره که صحوان عن ازرق الأزرق بن عبد الرحمن كده یعلی بن عبد الرحمن جاویدا شده یعنی یحیی بن عبد الرحمن الأزرق این مدل اینجورش ایشون اخوی ننوشته جور دیگه ها رو فهمیدن یه چیز دیگه این نقطه دیگه, دیگه نرشتن به ذهن ما میاد این روایت جز روایت که تصریح به اسم شده الان در این کتاب هست این همون که من گفتم چون اصانه دیگه ما زیاد داریم صفوان انه یحیل از داریم انه ابلحسن اما این یک سنده صفوان انه یحیل از وقت انه عبدالرحمن انه ابلحسن ما بیش از حرف ده سالشون پنجاه سال دشوارشی. صفوان، آن یهای الازر آنها بلحسان. این آن عبدالله رحمان آنها این ظاهران بین باشه. راستن در کتاب دادو تحسیب آماده که یه مبزاری به هر حال مسترش مشکل داشته. پس بنابراین وری این، اینم تحسیششون این که مبین را نبراری که مردم ازش دیدنشد. خب، پس تو اینجا روشن شد که به عنوان یهای الازر در کتاب رجال دو کتاب رجالی رجال شیخ و رجال برقی این هم و در روایات روایات هم در مسادر سلاس در هم همامازه فقیه کم کافی بیشتر اوزه تحضیح داره بین بینی کافی ها تحضیح, تحضیح و خصوم این وجه بعضی ها به کافی اوزه تحضیح این اوزه تحضیح کافی نه بوده مشترک هم داره این یکی تا ایجا این عنوان اول عنوان دوم ایشون زده یه از از رغب بیاه سابوری ایشان این رو جدا کردن و ننوشتن احتمالا متحده با اونه و اتحادشان بایی واضحه بفردارم. اینجا فرمودن که روان عبل حسن و روان ها عبان عبانه نو اسمان حسن و موسن این یک روایته یک روایت آمده به این عنوان یه از از رغب بیاه سابوری در چطور رجال میمونه در بغیام میمونه فهارس به نظر من اتهادش خیلی ما مندبندی که کردیم خیلی راحت شد یک دوره رو در کوته بربه ها مانده یحیی و هیچ مشکل هم نداره بیا صابوری عثمان صابوری پادشاهی لطیفی بود چه ببین مثلا ولی در پیک مثل پادشاه هری صابوری مخفف کلمه شاکوریه لباسایی بوده که در لطیف بوده تا اینجا دو تا عنوان دیدیم و به نظر ما تا اینجا خیلی واضحه که این دو تا عنوان یکی هستند تکرارش و روشن هم شد با این حسابی که من الان عرض کردم روشن شد که در کتب حدیث دو تا عنوان تا اینجا جو روایات اما در کتب رجالی که تا اینجا دیدین فعلا یک عنوان هم. تا اینجا بعد مرحوم استاد باز در صفحه چهل و یک یه یهیت نه حسان تنها آورده خودشان جدا کرده شماره نداره که با عذر یکی راست هست هم نبیم با عذر یکی این رو برقی هم داره همین اکتفا کردن رجال شیف و برگی این عنوان ثبوت یعنی ما این عنوان در کتب حدیث در کتب رجال داریم اما توی اصانید نداریم توی اجازات هم نداریم باشه شد نه تو اسانید داریم، نه تو اجازه. لکن اعرض کردیم کتب رجال از اسانید درسته شده، یعنی که گفتیم پس قاعدتا روایاتی بوده که تو شهر نه بن بوده، ولی برقی ذکر نمیشه. لکن الان اون کتاب روایت لا تو کتب اربعه اینطور که اجازه این در تغییر کتب اربعه همش نشد نگاه بکنه. کنه. در کتب اربعه لا اقل نیست. این هم عنوان سوم که در کتب رجال آمده آدتاً کتب رجال از اصانیز گرفته شده اما الان در کتب عربه الاغل نداریم یهیبن حسان تنها بعد ایشون یهیبن حسان از رو نوشتن ای اناوین رو جدا کردن این فقط در کتاب صدوق آمده تو مشیخه هیچ جه دیگه نیامده مشکلش هم که در مشیقه صدوق هم زیل سند آمده اولش این داره و ما کانفی عنی یهی الازرد عنوان یهی الازرده بعد رو نهار میکنه ابن ابی عمر ان ابان ان یهی ابن حسان الازرد ان ابان ابان ابن عثمان ان یهی ابن حسان الازرد پس ما این کارد یک جا وقت الان یک اینه. که اول عبارات یحییای الازرق بعد اوورده لازمو فهمید کسریش از صدوق استظهار کرده یحییای الازرق اینه چون اول یحییای الازرق بعد بعدین آورده و اینم واقعا نمیدونم نمیدونه خود منم الان نمیدونم چرا صدوق این کارو کرده ان شاءالله فردا توضیح بیشتری میدم خاصم واسه توضیح که چرا این کار صدوق ange چرا چرا؟ که نمیدونی آخرش میدونید می به هر حال اما ارزش این الان عرض کردیم. ارزش یک سند است. هر در کتاب دو جا فقط به اسم یحیی العزر ابتداد کرده. که هر دو هم در کافی هست هر دو هم در کافی از طفوانه و واضحه که یعلی دیگری دیگر. حالا چرا من نمی‌فهم واقعا نفهمیدم. دو مورد داره. ایشون حالا مکانی یعنی که یحیی العزر اسمش برده حالا آیا در کتابی ای که صدوق در اختیار داشته یه یبنه از و بوده خب چرا توی نیورده در حال دو مورده هر دو مورده تو کافیه هر دو تو کتاب الهجه و فکر میکنم هر دو مورد مقابل صدوق هم بوده چونتون میکنم چطور شده؟ اولا یک مورد هر دو مورده هم ابرحسن موساست یکی به ما ساده هم نسبت داده مورد اولشه سأله. روا... امام در قبلی در اس قبلی اعام صادره. اما در کتاب کافی در هر دو مض اونسم جهت داه. میشونون تو اون دوره مووس جهت است اما مذات به مامون ساده. سر در, در میره هر حال این حالال رو فردا بازی توضیح بیشتری میگم ما از عباس صدوق هنوز سر در ننگود. چرا این کاره کرده چی شده چی بوده استظهار خود ایشان بوده؟ این رو هنوز ما نمیده؟ خوبش خوبش ما ارزش بندی بکنیم اینطوره در یک روایت در کتب یا دو روایت در کتب روایات آمده یحیی بن ال اگر قبول بکنید که قبولم نداریم ما بلر اگرم قبول نداریم این یحیی بن حسان اذر که خوبی خویی برش عنوان دادن و من منحصل اینجاست در کتاب من لایره حضور شش تا حدیث از یحیی الاذر دو تاش از ابان ان یحیی نظر یکی شد دو تاش چهار تاش از شخص است ابتدا به اسم یحیی نشده چهار تاشیش صفوان ان یحیی نظر به اسم یحیی دو تاش به اسم یحیی ابتدا شده که سرانجام اینجا به اسم اون که ابتدا به اسم یحیی شد و ما نمیفهمیم اصلا چرا صدوق این کاری کرده نمیفهمیم یک یحیی نه حسان کوفی هم داره این یه یبن حسان هم همه آی خویی جدا داده احتمال اتحادم نرده اینم فقط تو کتاب شیخ توسی آمده رجال شیخ توسی نه در اصانیت داریم نه در رجال دیگری یه یبن حسان الکوفی اینه داریم قاعدتا از کردیم کتاب رجال از چیز گرفته شده از روایات و رجال شیخ هم عادتا از رجال ابن اغله گرفته شده از نظر تاریخی اینطور میشه یک روایتی بوده ابن عبود دیده توی شهیف نحسان کفیان عبی عبدالله بیشون برداشت در کتاب بشون اصحاب و سازر نمیشه چی میخونم از اون گرفته؟ اون روایت آن الان دست ما اون من نظر توضیح میدهم من حرزم رو این شخصه با... کلن میخواییم راه رجال رو براتون روشن بکنیم و اون حالات تحبدی که آویم گرفتن این برداشته ب پس این در یک روایتی بوده که به ما نرسیده پس در یحیب نحسان ما تا اینجا سه تا عنوان داشتیم یحیب نحسان الازرخت این فقط در مشهه صدوقه یحیب نحسان تنها که در رجال شیخ و برقیه تو روایت ندارید دارا یحیب نحسان الکوفی که فقط در رجال شیخ جای دیگر ندارید این تا اینجا چند تا عنوان دو تا عنوان اونجا داشتیم یحیل ازدر داشتیم و یحیل ازدر و یحیل ازدر و یار تا اینجا پنج تا عنوان شد آقای خودمی تا این پنج تا جدا کرده بعد یک وقت الکلامی دارن یک مختصر یکی مختصر بعد دارن این بعد ارزیم و سالله و قرآن و